و فضا میگه که تو مسجد پیغمبر من نشسته بودم و نماز رو خوندم بعد که نماز خوندم که قرق عبقار خودم بودم راجع پیغمبر شد می کرد من عظمت پیغمبر این ها درسته دنی ابن عبدالعوجو از در آمد را دید یه مدتی می شدند یکی ات هم سکرات آمد اونم فضل شده شده شده شده شده با هم بگر حرف زدم ولی من صداس می کنیدم بعد دیدم که این که دارن حرفایی که آقا طبیعت هست و طبیعت چیزه دیگری تو طبیعت عدلان بوده است. عبدان هست طبیعت مددری ندارد و از یه حرفا و فکر باره میگه پاره کرده من ناراحت شدم بعد کم کم صحابت پیغمبر آمده میاد و عرض کنند که این چه ای بوده و نابغه عظیمی بوده و این دبین چه کاری که که بعد از دو غرن نامی این در اقصا بلاد عالم که دریاها ها تو خودسی ها در مهزنه ها برده نیسه و ابن عبدالعجا گفت من در نبوه این آدم چه فکر میکنم همیشه من متحیرم و باغن مرد فوق الادهید ای شدی که این اون چنان عطبانید مفضل که جد فرشت یکار بیاید شروع به فرشت دادن خبیص ها من و اونا پیغمبر آمدید خدا را این کار بزنید به پیغمبر خوش میدید فلا نزی حرفا خوبا بارد بایی گوار تو چه نهلهی هستید مشکلی خوب بیا با هم دیگر هستید از سلام درقه بیا بگو چار از سیز گوه از شایدار ایمان جبر ما با خود و برخورد با کردیم با ما با سری بخورد کرده. خیلی با کرده بعد آمد خدمت عرضت صادق و با بیام که جریان و عرضت خیلی با نرمی دهید تر بودی این که عشبانی نباش حالا بیا یه کار بیا بکن تو عرضت تو بیا منزل من من یه سلسله جرس ها بهتون میدم که بعد وقتی با اینها مواجه شدی، اون وقت بتوانی با اینها برست کنی که یک شب دیگه من از دو خوابم نیوست تو بزود رستم چهار شبان چهار روز از صبح تا زور حضرت مستقر حضرت ایلها کرد ازیر و من نبیستم که این کتاب توحید مفضله که با فارسی هم ترجمه شده و کتاب بسیار خوبی هم هست به این کتاب بسیار خوبی